به این یادداشت خاطرات آن زمان همسر آقای ایواتاکه هم اضافه شده است. در مورد بهبود مجز آسای آقای ایواتاکه همسرش از هرکس سوال میپرسید و جواب او را کوتاه یادداشت میکرد. آیا اینها می توانست مرجعی برای درمان سوکو شود؟ آن زمان برای برنامه پراکندگی در درمانگاه حساگاوا واقع در روستای یودا بیرون شهر فکویاما بودیم. ایواتااک شوهرم، به عنوان عضو بهداری بیمارستان شماره دوی هیروشیما وارد خدمت شد. پسر برادر شوهرم که شوهرم جای پدرش هم هست به مدرسه راهنمایی نمائی شماره هیروشیما رفته بود. دکتر حساگاوا در روستای یودا برادر بزرگتر واقعی من است. شب هشتم ماه اوت فوکویاما بمباران هوایی شد. از صبح روز بعد از آن خطوط فوکوشیو و ایگاکی که از فوکویاما میگذشتند مسدود شدند بنابراین صبح زود روز نهم برادر بزرگم هاسوگاوا مرا عقب ماشینش سوار کرد و از روستای یودا به فوکویاما رساند بعد از آن تا کوسادو پیاده رفتم از کوسادو آزمه تومانوتسو شدم و از تومونوتسو با اتوبوس به ماتسونگا رفتم از آنجا سوار قطار شدم و وقتی به هیروشیما رسیدم که خورشید غروب کرده بود ماتسوناگا و هیراشیما این قسمتی از مسیری بود که در قدیم یک عده از فراریان خاندان تایرا آشیکاگا، تاکاوجی و دیگران از آن به سمت دریای غرب فرار کردند روبروی ایستگاه هیراشیما چادری افراشته بودند داخل شدن و شب را به صبح رساندند. سرباز ها از چادر محافظت می و افرادی که به نظر می رسید در راه مانده داخل آن دراز کشیده بودند قبل از اینکه از روستای یودا راه بیفتم برادر بزرگم هاساگاوا هم کرد که این کار بیهوده است و بهتر است صرف نظر کنی اما احساس می کردم شوهرم هنوز زنده است شوهرم ساکه خیلی زیاد دوست داشت پس بطری دارویی را پر ساکه کرده و داخل کول پشتی هم گذاشته بودم از برادرم بازوبندی را که بر آن نقش صلیب سرخ بود امانت گرفته بودم تا نشان دهم که پرستار همراه نظامی‌ها هستم اگر این بازو بند نبود، هیچ زنی نمیتوانست به هیروشیما برود. صندل زوری پایم بود و شلوار کار پوشیده بودم. شهر هیروشیما را نمیشناختم. وقتی راه بیمارستان شماره دو را از سروازی پرسیدم، جواب داد آن اطراف کاملا خاکستر شده است و رفتن هم هیچ فایده ای ندارد. از مدرسه راهنمایی شماره یک که پرسجو کردم، جواب داد تمام دانش آموزان مدرسه از بین رفتند. و آنجا تبدیل به صحرایی سوخته شده است. به طور حتم برادرزادی شوهرم کشته شده بود. پس درون چادر دراز کشیدم. کودک بیکس و کاری در چادر بود که هرچقدر سربازان نوازشش می کردند باز هم والدینش را میخواست و نمی خوابید. سعی کردم بخوابانمش. تا سرانجام خوابش بود. حدود ساعت چهار صبح آهسته ویدار شدم و برای جستجوی شوهرم به بیمارستان شماره دو نیروی زمینی رفتم. سهرایی سوخته بدون هیچ استحکامات نظامی بود. فقط چادری سرپا کرده بودند. نامش را به یاد نمی آبرم. اما افسر ارشدی که از اطراف توکیو آزم شده بود گفت چند بار نگاه کردم اما چیزی ننوشتند. بهتر از تا زمان صدور بیانیه ارتش به زادگاهت برگردی. بعد همان افسر ارشد با قند و چای از من پذیرایی کرد برای اطمینان بار دیگر درباره مدرسه راهنمایی شماره یک پرسیدم که آنجا هم مانند اینجا به دشتی خاکستر تبدیل شده بود با اینکه افسر توصیه کرد برگردم با خودم اندیشیدم بهتر است همه جا را بگردم پس در امتداد ای که در آن نزدیکی بود به سمت بالا دست رفتم کنار رودخانه آلونک‌هایی وجود داشت که با ورقه‌های حلبی و نی ساخته شده بودند ساکنان آنجا همه صورتهایی سیاه داشتند و فقط دندان‌ها و چشمانشان سفید بود آوارگانی که اندامشان مانند اندام شخصیت‌های نقاشی‌های تومار قدیمی بود کمی دیگر که رفتم جمعی را دیدم که افتاده بودند و ناله می‌کردند با صدای بلند فریاد زدم ایواتا که اینجا نیست جوابی نیامد گوشم را تیز کردم فقط صدای ناله می آمد. چیزی شبیه صدای عشبا فکر کردم بمب واقعا وحشتناک بوده است وقتی از کسانی که از کناران ها می گذشتم پرسجو کردم گفتند بمب ویژه جدیدی انداخته شده است همچنین فهمیدم سربازان بیمارستان نیروی زمینی بعد از بمباران در جایی پذیرش شدند بعد وقتی پرسیدم کجا دنبال آنها بگردم جواب دادند مکان های پذیرش آنها سه نخت است. از آنچه شنیدم فقط جایی به نام حساکا در ذهنم باقی ماند. کاملا اتفاقی بود. دو محل دیگر را فراموش کردم. با همه این حرفها نمی‌توانستم نمیتوانستم در یک آن به هر سه مکان سر بزنم. فکر کردم حساکا را جستجو می کنم و بعد باز با پرسیدن جاهای دیگر را جستجو خواهم کرد. پس فقط نام حساکا را به خاطر سپردم. اساکا در فاصله دو فرسخی هیروشیما قرار داشت. پیاده رفتم تا به آن روزا رسیدم. حدود ساعت یازده قبل از ظهر بود. زمانی طولانی بر خاک ریز کنار رودخانه قدم زنان پیش رفتم. نمیتوانستم بفهمم چرا آن افسر داخل چادر در محل بیمارستان نیروی زمینی، محل پناهگاه را به من نگفته بود. در اساکا در حالی که از یکیه که خانه های کشاورزان سال می کردم را میرفتم تا به مدرسه عمومی یعنی پذیرشگاه اصلی رسیدم ساعت چهار بعد از ظهر بود داخل چادرهای حیات و کلاس لبریز از زخمی بود ساکنان اقامتگاه گفتند که هنوز فهرست اسامی را تهیه نکردند آقای ایواتاکه اینجا نیست در حالی که در راهرو داخل کلاسها و داخل چادرها را می گشتم صدا زدم اما جوابی نیوم وقتی شنیدم افرادی که زخم‌های سطحی‌تر دارند در خانه های کشاورزان بستری شدهاند بار دیگر به خانه های کشاورزان سر زدم. سر انجام کاملا از پا درآمدم. بی هیچ شرم یا آبروداری به خانه کشاورزی رفتم و گفتم بگذاری در ایوان شما استراحت کنم. ایوان سرد را اجاره کردم و دراز کشیدم. حدود ساعت پنج بعد از ظهر بود. شاید دو تا سه ساعتی استراحت کردم. بار دیگر به مدرسه عمومی برگشتم. این بار فهرست اسامی آماده شده بود. به من گفتند که دیروز به مدرسه عمومی شبارا منتقل شده است. فقط افرادی که زخم سطحی داشتند منتقل شده بودند. پس تا حدودی خیالم راحت شد. اما این خوشحالی لحظه‌ای نپایید. وقتی از افراد عبوری سؤال کردم گفتند همه آنها تلو, تلو خوران را رفتند و نزدیک به موت بودند. بسیار عجیب. بود. فکر می کردم زخم شوهرم عمیق نخواهد بود اما احساس می کردم باید عجله کنم. وقتی هم فکر کردم امکان دارد زخم عمیق باشد باز هم عجله داشتم. برای رفتن به ایستگاه حساکا هم بسیار عجله کردم. اندکی قبل از حرکت قطار سوار آن شدم. قطار پر بود و آهسته حرکت می کرد. وقتی خواستم در شهرک شیعو قطار را عوض کنم از زمان حرکت آخرین قطار به شبارا گذشته بود. چاار نبود. روزنامه ای روی سکو پهند کردم، نشستم و منتظر صبح شدم. کنارم شخصی از شهرک فچو بود که با هم از هر دری صحبت کردیم. آن به این گفت که درمانگاه حساگاوا در فچو را می شناسد. در راه به شوبارا بودم، پس سری به برادر بزرگترم حساگاوا نوشتم که لطف کند اقلام لازم را بیاورد. از این شخص هم خواستم که نامه را به درمانگاه حساگاوا برساند، یک خوششانسی میانه این همه بد بیاری. این شخص به قطار مسیر فکوشی به فوچو سوار شد و من هم به قطار خطوط گبی به شبارا سوار شدم. خطوط فکوشی و گبی در شهرک شیعو از هم جدا می شدند. خوشبختانه خبر به هوساگاوا به خوبی داده شد. برادر بزرگترم پرستار و دخترم که در برنامه پراکندگی به هوساگاوا آمده بود اصر روز یازده اوت به خانه اممم امه به وسیله آن دختر از انتقال ایواتاکی به این شهر مطلع شده و برای اطلاع دادن به خانه پدری ایواتاکی رفته بود. پس در خانه نبود. بعد از کمی استراحت و مرتب کردن وضع ظاهر خیلی زود به بیمارستان شبارا رفتم که مدرسه عمومی این شهر بود. با راهنمایی شخصی که سرجوخه یا گروهبان و به هر حال سرباز بهداری بود به کلاس های درس رفتم. مانند مدرسه حساکا؟ زخمی‌ها روی زمین دراز کشیده بودند و مانع دید می‌شدند. نمی‌دانستان ایواتا که کجاست. وقتی آن شخص که شبیه سرواز بهداری بود صدا زد هی hey, ایواتا عضو پشتیبانی بهداری کجاست؟ من هم داد زدم ایواتا اینجا نیستند. ایواتا اینجا نیستند. قلبم به تپش افتاده بود. هیچ جوابی نیامد. توانستم دستی را ببینم که به سختی بالا آمد. سرانجام فهمیدم اون شوهرم است. صورتش تقریبا دو برابر ورم کرده بود. با چسب پانسمان گازی روی لاله گوشه راستش قرار داده بودند. عجیب برایم این بود که وقتی یکی از بیماران ناله می تعداد زیادی از بیماران دیگر همزمان ناله می کردند. به چه علت اما درست مانند صدای وزقهای یک شالیزار بود که با هم سرا صدا می کردند. بسیار وحشتناک بود. از دید رسمی این پناهگاه پذیرشگاهی موقت متعلق به شعبه بیمارستان شمارگیه که نیروی زمینی بود، زمان و وضعیتی فوقالعاده بود. پس خوردهگیری درباره معالجه بیماران یا کمبود امکانات درست نبود. از لحاظ قوانین بسیار سخت گیری میکردند. بعد از آمدن اعضای انجامن دفاع ملی زنان برای پرستاری به خانواده بیماران اجازه پرستاری داده نمیشد. با این همه نمی توانستم شوهر در آستانه مرگم را، رها کنم و برگردم بنابراین به ادبیات رایج دوری جنگ رو آوردم و گفتم حتی اگر یک نفر هم زودتر سلامتیش را به دست آورد می تواند برای کشورش مفید واقع شود واقعا یک مشاجره تمام عیار بود اما آن شخص شبیه سرباز بهداری حتی لبخند هم نزد نگران شدم چاره ای نبود از کسی که ارشد شوهرم بود و در حال حاضر ریاست شعبه شبارا را بر عهده داشت خواهش کردم به دستور رئیس بیمارستان شوهرم را به اتاق دو نفرهای منتقل کردند با اینکه گفتیم عضو پشتیبانی بهداری است اما چون هنوز یک سرباز دوم در حال آموزش بود بنابراین باز هم حدود دو ساعت طول کشید تا با او مانند پزشک ارتشی برخورد شود علت این بود که بیمار قبلی اتاقی که شوهرم به آن منتقل شد سرهنگ تمام و فرمانده واحد پیاده نظامی بود که به علت بیماری روانی حالت جنون داشت پس این انتقال چندان مسمر سمر نبود. بعد از آن به اتاقی سه نفره به وسعت چهار و نیم تا تامی منتقل شد. بیماران قبلی این اتاق سرواز دوم پشتیبانی بهداری پزشکی به نام نکاجما بود که از شهرستان اوکا یاما به خدمت فراخوانده شده بود. دیگری داوطبی جوان متولد شهرک کاسا اوکا در شهرستان اوکا یاما بود که درجه سرجوخه داشت. دو دست و صورت سرباز دوم نقااجما سوخته بود و از اصحال رنج می برد. سرجوخه جوان نسوخته بود اما زخمی بزرگ در سرش داشت. وضعیت نظامیان مقابل افراد عادی کاملا مشخص است. اموری کاملا مبهم هم وجود دارد. هرچند نمی توان گفت همه اینطور هستند اما متوجه شدم چنان نظامیانی هم وجود دارند. هنگامی که شوهرم به اتاق سه نفر منتقل شد، برادر بزرگم هم همراه پرستار با گاز پانسمان، بانداش، آمپول رینگر و شیره انگور، روغن اکسید زینگ و غیره آمد. در آن زمان این اقلام بسیار با ارزش و مقدارش هم به اندازهی بود که باید دو نفر حملشان می کردند. برادرم آنها را به صدفان دوم هاناکی پزشک ارتش تقدیم کرد و گفت شاید بکار آیند. اما صدفان دوم مردد شد. و به سختی متذکر شد که ارتش بر اساس اصول نظامی عمل می کند. پس می خواهم افراد عادی سرخود به کسی چیزی ندهند. همین افسر برای درمان سوختگی شوهرم به پرستار دستور داد تا مایع شفاف ناشناختهی به زخم بمالد. روز بعد از مالیدن آن شوهرم به آن نگاه کرد. یک دانه تخم خیار چسبیده بود. فردا شوهرم از پرستار پرسید آن دارو چیست؟ وقتی گفت دیروز تخم خیار چسبیده بود، پرستار گفت وای، تخمش جامانده بود، من که آب آن را خیلی خوب چلانده و صاف کرده بودم، خودش لو داد که فقط اصاره خیار میمالند. شوهرم لبهای ورم کرده را جمع کرد و گفت، یعنی محلول هچیما نبود. روش درمان سوختگی با آب خیار از قدیم بین افراد مبتدی وجود داشت، اما در مورد این سوختگیها ها اگر با چیزهایی مثل رینگر، شیره انگور و آب نمک تعام خیلی سری کم بوده آب جبران نشود و یک سوم از آبهای کل بدن از بین برود دیگر نمی شود کمکی کرد این فقط یک نمونه بود چون این کارهای فراوان وجود داشت روز سیزدهم ماه اوت را خوب به یاد دارم شوهرم قادر به تحمل درد شدید گوشش نبود بعد از ظهر روز بعد یعنی چهاردهم ماه اوت رئیس بخش و بینی بیمارستان سلیب سرخ ژاپن شعبه شبارا یعنی صدفان دوم وظیفه کدسوهارا گوش شوهرم را دید و به شکلی غیر محترمانه و با کلماتی تکبر آمیز آن را معاینه کرد. وقتی گاز روی لاله گوش را کند و چربی ترشح شده را پاک کرد از سوراخ گوش خلطی روغن مانند به صورت جله به بیرون سرازیر شد. از قسمت لاله گوش که زخمش کبره بسته بود، تا سوراخ گوش کرمک‌های زیادی وول می‌خوردند. حدود دویست کرمک به اندازه یک میلی‌متر بودند. همانطور که سوتوان دوم گفت، با آب سرنگ درون ظرف شست و بیشتر آنها را شستم. کرمک‌های داخل سوراخ گوش را خود سوتوان دوم بیرون آورد. خوشبختانه عاملی که سبب آسیب رساندن به پرده گوش می‌شد از بین رفت. درد گوش قطع شد. و نشانه‌هایی از فروکش کردن تب ظاهر شد. ساکه ای را که همراه آورده بودم قطره قطره در دهان شوهرم میریختم. لاله گوشه راست شوهرم را کرمک‌ها خورده بودند و از بین رفته بود. در حال حاضر هم به همان شکل است. گوشش هنوز هم سوت می‌کشد. شوهرم از اینکه کرمک‌های گوشش نابود شده بودند خوشحال بود و به من سفارش کرد تا برای تشکر بطری ساکهای برای ستوان دوم کودسوها را ببرم. از عمه در شبارا تقاضا کردم. بطری ساکه مناسبی تدارک دیدم و آن را در بخچه پیچیدم. وقتی آن را تحویل دادم، ساتوان دوم بطری را در قفسه گذاشت و بخچه را بر کف چوبی پرد کرد. گفت: این را بردار و ببر. برگشتم و ماجرا را به شوهرم گزارش کردم. شوهرم گفت: بله، به خاطر جنگ است. شوهرم گفت چیزی به نام جنگ الزام هایی دارد که چنین هایی میسازد. جنگ هیچ خوبی نمیتواند بیافریند. در مدتی که در شبارا بودم، در خانه اممه شوهرم اقامت داشتم و به پذیرشگاه رفت و آمد می کردم. برادر بزرگترم حاسا فقط یک شب آنجا ماند و بعد همراه پرستار و دخترم به روستای یودا برگشتند. روز پانزدهم ماه اوت، یعنی روز پایان جنگ، ناگهان شوهرم دچار طبی شدید شد و نفسش به شماره افتاد، اما، از روز بعد باز تبش پایین آمد. ضعف او خیلی شدید بود و معالجات هم خوب پیش نمی رفت. قرار شد او را به خانه هوسوگاوا ببریم. روز بیستم ماه اوت، کامیون زغال‌سوزی را به قیمت بازار سیاه اجاره کردیم. آن زمان به بیماران اجازه داده شده بود به هر جا می خواهند بروند. من و شوهرم روی صندلی کمک راننده سوار شدیم. همراه راننده که به خاطر نفرت از بوی بیمار اتمی ماسک زده بود، سه نفری به شهرک فوچو آمدیم شوهرم محکم و استوار اما من خیلی خسته بودم شوهرم در بیمارستانی در فوچو بستری و روز بعد نشانه های بیماری اتمی در او ظاهر شد بنابراین شوهرم اگر حتی یک روز دیگر در شبارا ماند شاید مرده بود آقای ناكاجیما که همراه شوهرم در شوبارا در یک اتاق بستری بودند با اینکه نسبت به او زخمی سطحی تر داشت اما درست همان روزی که ما به شهرک فوچو رسیدیم از دنیا رفت بعد از دو روز و دو شب اقامت در بیمارستان فوچو نزد هسوگاوا در روستای یودا رفتیم بوی تعفن اتاقی که ایواتاكه در آن بستری بود از بین نمیرفت بنابراین دو روز تمام در و پنجرهٔ اتاق بیمارستان را باز گذاشتند در روستای یودا باغ هلوی سفیدی وجود داشت که میوه های آن به درشتی هلوهای نییاما بودند دوبار و هر بار ده تا از این حلوها خریدم که ایواتاکه تمام آنها را خورد. لب و لسش همه آسیب دیده و داخل دهانش هم دچار التهاب و جوش بود. پس فقط می میتوانست غذاهای آبکی بخورد. حلوهای سفید را همراه تروب رنده شده میگوبیدم، در اون کاسه بزرگی میریختم و دو یا سه تخم مرغ به آن اضافه می میکردم. غذایی را که به این شکل به دست می آمد، داخل دهان او میگذاشتم خوشحال کننده این بود که او حتی یک ذره غذا در کاسه واقعی نمی و همه را می خورد. با اینکه روزی بیست حلو می خورد، اما فکر می کردم آیا بیشتر از یک ماه دوام خواهد آورد؟ خودش با روحیه شکست ناپذیر و با تمام وجود تلاش می کرد. روز بیست و دوم اوت به روستای یودا برگشتیم و روز بیست و سوم ماه بود که بیماری اتمی بیشترین نیرویش را وارد کرد. نفسش به کلی قطع شد. در حالی که با گریه فریاد میکشیدم گفتم همش بیهوده بود.۲ سوم سپتامبر بود. همسرم با نفسی شمرده وسیت کرد. هنگام وسیت کردن می توانست حرف بزند و بشنود. به شوهرم گفتم آنچه شما گفتید انجام خواهیم داد در عوض می خواهم بعد از این بدون هیچ حرفی بگذارید درمانتان کنیم. شوهرم خودش این را می دانست. خون تذریق شد. و وقتی بعد از آن نوبت به رینگر رسید، تبش شدید شد و آزارش داد. گفت دیگر بس کنید. جواب دادیم فقط یکی دیگر و اگر این هم بد بود صرف نظر می کنیم. خون و رینگر را تزریخ کردیم. اما نمیدانستیم خوب است یا نه. به مرور زمان آن را تغییر دادیم. بازوی چپش عفونت کرد. به خاطر رینگر نبود. گفتند شاید به دلیل یک نوع افونت خونی باشد. برادرم حسوگاوا خودش به بیمارستان رفت و بی آنکه این کار را به کسی بسپارد وقتی کسی نبود محل عفونت را با چاقوی کوچک جراحی برید که هنوز هم اثر آن باقی مانده است. برادرم بسیار لجباز است و عمل باز را به دیگری واگذار کند. در آن اوقات واقعا مانند جنازهای خشک و اسکلت مانند شده بود. در وسایل آقای حسوگاوا نمونه اسکلتی وجود داشت که بسیار شبیه شوهرم در آن روزها بود. هنوز فصل گرما بود و برای جلوگیری از مگس هایی که تخم ریزی میکردند حتی در طول روز هم پشه بند است بود. وقتی از بیرون پشه بند به او نگاه میکردی، با اسکلت مثل سی به دونیم شده بود. این و چون احساسات هم را جریه دار میکرد. برادرم آن نمونه اسکلت را جای مخفی کرد. در روزهای بعد باز شوهرم درد داشت. گوشت و از تمام بدنش از بین رفت. پوست و استخان شد. با اینکه توشک هم پهن می کردیم باز هم سفتی تاتامی کف و اتاق به استخانهایش فشار می آورد و می گفت درد دارد. به اندازه ارتفاع یک تخت توشک روی هم انداختیم و روی آنها هم دو توشک پر پهن کردیم. چون توشک پر بود فکر می کردم دیگر نباید آن اندازه درد داشته باشد. ولی در نهایت فهمیدم که درد. ارتباطی با تاتامی زیر آن ندارد. نمی توانستم دلیلی برای آن تصور کنم. پزشک او فقط برادرم حساگاوه شده بود. همه پزشکان از او قطع امید کرده و از سوی همه رها شده بود. فقط برادرم حساگاوه تزریق رینگر و خون انجام میداد. گروه خونیش او و گروه خونی من و بچه ها هم اوست. از لحاظ مواد غذایی تقریبا مشکلی نداشتیم. از یکی از همسایه‌ها جگر درخواست کردم که لطف کردند و یک جگر کامل آوردند اما هیچ کس نمی‌توانست این همه جگر بخورد سرانجام غذایش حلو و تخم مرغ شد این غذا را با ولع می‌خورد فکر کردم وقتی فصل حلو بگذرد دیگر نخواهم توانست آن را به دست بیاورم بنابراین مقدار زیادی حلو خریدم و آنها را در ته چاهی گذاشتم روستای یودا از قدیم محل تولید حلو بود هلوهایی به عمل می آورد که از هلوهای معروف نییاما در شهرستان اوکایاما چیزی کم نداشتند. آن زمان حتی با پول هم هلو نمی فروختند. بنابراین مجبور شدم هلوها را با کیموناهایم هایم مبادله کنم. دو صندوق کیمونو داشتم که همه آنها تمام شدند. آن زمان تخمین می زدند که موهای سر بیمار اتمی می ریزد یا نه. بیمار می میرد یا زنده می ماند. این مسائل به سنجش قدرت تخمین افراد تبدیل شده بود. هرچند موهای سر شوهرم کاملا ریخت، اما آیا وضعیت بیماری او با سایر بیماران متفاوت نبود؟ به جز مورد شوهرم، معمولا بعد از بروز بیماری اتمی اشتهای بیماران بسیار کم میشد شد. مسئله دیگر هم که معمولا در مورد تمام بیماران صادق است، آب شدن گوشت تن بیماران به وسیله بیماری است، تا آن حد تحلیل میرفتند که تبدیل به جنازهای خشک می شددند. نمی توانستن مرتب غذا بخورند پس کمبودها جبران نمیشد و این درست مانند وضعیت بیماران سرطانی بود. گلبول سفید خون هم کم می شد که در مورد شوهرم حدود دو هزار تا از این گلبول کم شد. علاوه بر اینها مشکل دیگری هم بود. شوهرم تا ده روز بعد از بمباران یبوست داشت. ادرارش هم خیلی کم بود به هر حال بمبی بسیار وحشتناک بود که پوست مچه دست شوهرم را کنده بود فهمیدم که بمب همچنین دارای پرتوی با قابلیت عبور از اجسام بوده است زیرا نه تنها در ظاهر بدن که در داخل بدن هم کارهای انجام داده بود در مورد شوهرم بمب باعث شد تا قشای مخاطی مسانه کنده در جایی از مسیر ادرار جمع و مانع از خروج آن شود درست مانند قشایی که محل بندهای خیزران را مسدود می کند. هرچند به آن بزرگی نبود، اما پوست داخلی مسانه کنده شده و مجاری ادرار را مسدود کرده بود. احتمالاً به خاطر همان پرتو قابل عبور از اجسام بمب اتمی بود که قشای مخاطی مسانه کنده شده بود. این مسئله بعد از رفتن به حسگاوا هم وجود داشت. اما هفته که از بمباران گذشت، تمام شد. وقتی به زیر شکن فشار میآوردیم، ادرار از مسانه به مجاری ادرار میرفت. وقتی هم به ماهیچه های تنگ کننده از بالا فشار وارد میآوردیم، ادرار از بدن خارج می شد. شوهرم ادرار خارج شده را در فنجان میریخت و بررسی میکرد. به من نشان میداد که چه مقدار از آن ماده شبیه صفحه بین بندهای خیزران خارج شده است. اما فقط مسانه نبود، معده کبه. روده و تقریبا همه اعضا کما بیش تأثیر پذیرفته بودند بیماری بر محل اتصال دندان و لسه ها هم تأثیر گذاشت دندانهایش لق شدند شنیدم برخی افراد مدفوع خونی داشتند و رنج اصحال هم بود در مورد شوهرم او یوبوست داشت به مسانهش هم صدمه وارد شد اما اگر آن قشای شبیه صفه بین بندهای خیزران را دفع می کرد دیگر مشکلی نن. شاید بدنش می قشای مخاطی تازهی بسازد. آن زمان برادرزاده شوهرم سال اول مدرسه راهنمایی شماره هیروشیما بود. رفتنم به هیروشیما برای اطلاع از سلامتی همسر و برادرزاده او بود. اما وقتی به هیروشیما رسیدم و از سرواز داخل چادار روبروی ایستگاه پرسیدم فهمیدم تمام دانش آموزان مدرسه راهنمایی شماره هیروشیما مردند. قلبم جریه دار شد. فکر کردم جریانی ظالمان است با این همه بعد از دیدن شوهرم تا مدتی او را ماتله نکردم وقتی دنبال شوهرم بودم یعنی زمانی که به حساکا و بعد هم به شبارا رفتم از مردن برادر زاده اعصابم به هم ریخته بود و دل سوخته بودم با همه این حرفها برادر زاده او عاقبتی تلخ داشت روز بعد از بمباران هوایی هیروشیما گروه امداد و نجات ویژه‌ای از روستای یودا به هیروشیما اعزام شد آنها به آوار سوخته مدرسه شماره که هیروشیما رسیدگی کرده و ظاهرا اوسوگاوا را از وقایع مطلع کرده بودند. برادر saute شوهرم برای کار خدمات رفته بود. از آنها جز یک نفر که به حالت نشسته در کلاس درس زغال شده بود، هیچ اثری نبود. شاید به دلیل جهش نور از بین رفته بودند. آن زمان فهرستی از نام دانش آموزان تهیه و این گونه اطلاع داده شد که فقط همین باقی مانده است. فقط نامهایی بر صفحه ای برنجی نوشته شد و باقی ماند. آنچه یادداشت های همسر آقای ایواتاکه بود. با تجزیه و تحلیل این یادداشت و یادداشت های دکتر ایواتاکه هیروشی از پشتیبانی بهداری ارتش هنگام بمباران اتمی هیروشیما به نظر میرسد که هنوز روش مناسبی برای درمان بیماری اطامی کشف نشده است روشی که آقای ایواتاکه انتخاب کردند تزریق خون، جبران فراوان ویتامین سی و خوردن حلو و تخم مرغ بود مسئله دیگر مفید بودن تنبلی سوای خوب یا بد بودن مفهوم آن است زیرا تنبلی برای فعالیت گلبول سفید لازم است اگر گلبول سفید کاهش یابند مقاومت کم می شود و فشار زیادی وارد می شود. بنابراین هر چند تنبلی از دید اجتماع ناخوشایند است اما به هر حال حکمتی دارد. باید دیدگاه اجتماع درباری آن عوض شود. بعد از همه اینها هم روحیه جنگیدن با بیماری است. اینها چیزهایی بود که شیگ بعد از خواندن یادداشتها داشت ها. درک